بسم الله الرحمن الرحیم رسیده بودیم به قاعده چندم قاعده سیزده همه کتاب و نسب فعل مزاره بعد از این که در قسمتی از کتاب اومد و گفت فعل برس قسم ماضی و مزاره و امر تقسیم میشه میخواد بگه که فعل مضارع موربه فعل مزاره چهست؟ موربه یعنی مبنی نیست که همیشه آخرش یک اعرابی رو بناان داشته باشه. بلکه آخرش با اختلاف عامل تغییر می کند. الامثله اريد ان احسینا السباحته. ارجو ان يعتدل الجو، یسرونی ان تزورنا لن أكذب، لن يفوز کسلانو. خوب در مثال اول آورده دو تا فعل مزاره در مثال اول و دوم و سوم خیلی اینا رو هم هدفمند آورده در مثال 4 و پنج و فقط یک فعل آورده در هفت تا دوازه که هنوز نخوندیم داستان جداست حالا دقتی داشته باش تا اینکه که امثله دیگه رو بخونیم اذن تقیم عندنا اذن تقیم اندنا اذن تربح تجارتك اذن سودا الهواء جئت كي أتعلم خرجت كي أتنزه أتعلم كي أخدم الوطن ببن ما هناك فيلمزارر منصوب ميكونات شارة هستن أن لان كي وإذن أنو درس مثال اول آورده بود لنو درس مثال بعدی ایزنو درس مثال بعدی و کرو درس مثال بعدی سه چهار میشه 12 تا هایی که آورده چهار تا هستند هر برای هر کی سه مثال آورده مثال چند شدن؟ شدند تا خب اریدو ارجو و يسرني که مرفوعا فلای مزاره اما ان احسنه، ان یعتدله، ان تزوره اینا منصوبند، فتحه دارند اگر این فعل ها مرفوع بودند، اون موقع زمه داشتند اون موقع چه داشتند؟ چه چی چیزی اینا رو منصوب کرده؟ ان چه چی چیزی؟ ان ان, ان احسنا فائلش ا نه هست از صباحت مفول بهی هست جو این ت دل الجو ت فل مزاره منصوب چون من بروش ان اومده الجوع فائلش هست یا سر می ان تظورنا ناسبه هست تزور منشوب هست با فتعه مفول بهی است. فائل تزوره انت هست که مقصاطتر هست درش. خوشحال میشم که ما را زیارت کنی. امیدوارم که هوا معتدل شود، میخواهم که شنا را بخوبی بیاموزم، لن اکذبه، هرگز دروغ نمیگویم، اکذبه با لن منصوب شده، لن یفوز منصوبه، علامت نصبش فتح است، الکسلانو فائلش هست، لن اضرب القطه، هرگز نمیزنم گربه را، فایل عبدالبه انا هست که مستطر است. چون در متکلم وحده همیشه انا مستطره و در متکلم معلغیر همیشه نحن مستطره این اذن همیشه در جواب میاد در ابتدا نمیاد این اذن در چی میاد این نقطه رو دقیق داشته باش در کتاب های بعدی انشاءالله میخونی که این اذن با سه شرط منصوب میکنه اون شرطا رو انشالله خواهیم خاند ولی فعلا دقت داشته باش اذن توقیم اندنا چه زمان اینو بیگه؟ اگر شخصی به تو گفت سازو رو مدینتکون شهر شما رو زیارت میکنن در جوابش میگوی اذن توقیم اندنا یا شخصی میگه ساکونو امینند من امانتدار میباشم در جوابش گفته میشه اذن بِها تجارتت در این صورت ببین در این صورت پس بدون که در جوابه در این صورت تجارت تو سود میکنه شخص میگه ساوق لِقو النوافذہ پنجره ها رو میبندم در جوابش گفته میشه اِذَن یَفسُدَ الهواء در این صورت هوا چی میشه خراب میشه پس ناصب بعدی اذن هست و ناصب چاری که چهارم کِ هست جِ تو برای تعلیله اومدم تا یاد بگیرم خرج تو کی اتنزه خارج شدم تا تفریح کنم اتعلمو که اخذو یاد میگیرم تا وطن را خدمت کنم برای تعلیله برای چی است یعنی علت اون چیزو میگه به این پس یون الفعل المضارئو متى سبقه احد النواصب الاربعه. قاعده میگه فعل مزاره منصوب میشه هرگاه که یکی از ناصبهای چهارگانه قبل از اون آمده باشه و هیا و عبارتنون چهارت ناصب این لان ایذن که. این لان که علا در کتاب های بزرگتر شما خواهی خوند که این ان خیلی از جا مستتر میشه یا وجوبن یا جوازن آه؟ مثلا بعد از لام تعلیلی آه. آه. یعنی این ان بعضی بعض جاها مقدره که بحثش مفصل شما تو کتاب های بزرگتر اینو میخونی ولی ظاهریشم اینایی که خوندی هر کجا که یکی از این چارتا قبل از فعل مزاره اومد فعل مزاره چی میشه؟ منصوبه میشه منظور از منصوب میشه چیه؟ یعنی آقا علامت ها نسبه بشمیدیم علامت رفع ازش بر میداریم مثلا یعن سرو اگر انسرش بیاد زنبه که علامت رفعه برداشته میشه فتح میاد میشه ان یعن سره ان یعن حالا ینسرونه مرفوع علامت طرفش نونه ان که بیاد نون برداشته میشه ان ینسرو ان ینس بیش پس درس بعدی خیلی درس ساده ای بود فقط این چهار تا رو حفظ کن هر کجا که دیدی سر فعل مضارع اومده بدن بعد فعل مضارع چی میشه منصوب بشه فعل مزار ما گفتیم موربه سه تا اعراب داره رفع نصب جزم نصب و بتاموخت الان جذب و میاموزه و در درس بعدی رفع و میاموزه. چرا در آخرش در رفع آورد؟ یعنی آقا هرگاه فعل مزار منصوب نبود مجزوم هم نبود بدان مرفوعه چون فعل مزار سه بیشتر دیگه ندار سه بیشتر حالا جذب شو میاموزیم نه بسال آورده لم يحفظ محمدون درسهو لم ينقطع نزول المطر لم يقبض على عللس لا تأکل و انت شبعان لا تكثر من الضحك لا تسرع في السير إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هوائها إن تجلس في مجرى الهوائي تمرض. إن يصافر أخوك تصافر معه أغل إن جاد قتيدا اینجا باز هم سه تا از ناصب ها رو آورد برای هر کسی مثال زد لم آورد لای نهی آورد و ان شرطی رو آورد ببین البته کتب دیگر لم لما لام امر و لای نهی رو با هم بیاورد این اینو جداگانه میارن و اون تقسیم بندی بهتره میدونی چرا آره به خاطر این که ما این جوازه بر دو گروه دو گروه تقسیم میشند جوازی می که فقط یک فعلو مجزوم می کنند و جوازی می که دو تا فعلو مجزوم می کنند. خب لمما لام امر و لای نه اوننا یک فعلو مجزوم می کنند تا رو؟ اما الشرطی دو تا رو اینجا مثلا مثال هفت دقت کن انت تفتح نوافذ خودجرتی یا تجدد خب این تفته هم مجزوم کرده هم یه تجدده در حالی که اون یکی رو خلاصه این شکل آورده هست لم یحفظ محمدون درسه لم لا مجازنه هست یحفظ فعل مزاره مجزوم شده چون لم رسرش اومده محمدون فائل هست درسه مفهول به هست لم ین نزول المطر لم ین قطع فرقی نمی کنه نزولو فائل مطر لم یقبض احدون علال لس لم جازمه هست یقبض مجزومه علامت جزمش سکون است. احدون هم فائل هست این با لم مجزوم شد با چی مجزوم شد؟ معنی, معنی رو به گذشته تبدیل میکنه لم یحفظ محمد درسه یعنی محمد درسش رو حفظ نکرد لم ین نزول المتر یعنی بارش باران قطع نشد لم یقبض احدون علال لس یعنی کسی رو نگرفت لا تاکل و انت شبعان این لای نه هست نخور در حالی که سیری لا تكثر من الضحق زیاد نخند لا تسرق فی السیر توند نرو پس این لا لای چه لا هست؟ لای نهی هست میبینیم که فیل مزاره رو مجزوب کرده خل لای نهی اللحاظ معنایی راحت تشخیص داده میشه اما اللحظ ظاهری باید با قرینه را نگاه کنی تو جمله بعدش اللحظ لفظی اینا با هم فرق دارند ببین دقت داشته باش اون لا معنی رو منفی میکنه هیچ عملی روی لفظ انجام نمیده لا نفیه ولی لا نحنه. لا نه مجزوم میکنه اینجا دقت داشته باش اگر ما بگیم لا تاکلوا معنیش اینه که تو نمیخوری این جمله خبری هست ما خبر میدی ولی اگر بگیم لا تاکل نخور، این طلبه، آخرشو چکار کرد؟ مجزوم کرد، لا تاکلو این نفیه، لا تاکل این نهیه، متوجه شدی؟ پس، اللحازه لفظی لا نافیه، عمل انجام نمیده، اما لای نهیه مجزوم میکنه. اما شماره عره هفت و هشت و نوه، انتفتح <تصفح> نوافذ الحجره یا تجدد اگر پنجره های اتاق و باز کنی هوا تغییر میکنه جدید میشه این, این تفتح میگیم این این شرطیه تفتح فعل شرط یا تجدد هم جواب و جزای شرط این تجلس فی مجره الهوائی تمرز تجلس رو هم مجزوم کرده تمرز رو هم چیکار کرده مجزوم کرده این یو صافر اخوکه تو معه اگر سفر کند برادرت، سفر میکنی با او خب، اینجا دو فعل یسافر و تسافر رو چکار کرده؟ انتنصر الله ی انصر بله. پس این از جزم بیا روی قواعد، قواعد همه چیزو توضیح میده. قواعده چارده پوانزه و شانزه یجزم الفعل المضارع اذا سبقه حرف, حرف جازمون کالحروف الاتیه مجزوم می شود فعل مزارع زمانی که قبل از اون حرف جازمی بیاید مانند حروف زیر مانند حروف زیر یعنی اینا تمام جوازم نیستند اینا بعضی از جوازم هن اینا و از اینا این مثال ها لم لا و لا او لا اوناهی و این و این شرطیه حالا این لام و اینا رو توضیح ده میگه لام والله لا اناهیه تجزیمانی فعلا مدارعا واحدا لام و لا اناهیه فقط یک فعل مزاره رو مجزم میگردانند والحرف اول یعنی حصول فعل فی ماضی حرف اول یعنی لام حصول فعل در ماضی رو نف میکنه موغی که ما میگیم لم آرس زد یعنی در گذشته زید درس نخوانده. فقط در گذشته نف میکنه فقط در چی؟ در گذاشته؟ وثانیین ها عمل فعل. اما لا ناحیه چیکار میکنه؟ از عمل فعل نه میکنه. لا تدرس از انجام درس چیکار میکنه؟ از در خوندن نح میکنه. شانزه ان تجزیم ان تظیم و وتفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني. أنا تأزمده. مِجَاءَنْ دَوْتَعْفَلَ مَجْزُمِي كُنَاهِ. همان طور كي در امثلا، س امثلا س مثال آخری و مد دو مجزوم اِن دَوْفَلَ مَجْزُمِی کَرْدَانَدَ. وتفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني. وإن کیز رمی رساند، این معني رمیده حت که ك... حاصل شدن فعل اول حاصل شدن کار اول شرطی برای حاصل شدن کار دوم ان تدرس تنجح اگر بخوانی موفق میشی پس برای موفقیت حصول اولی چیه؟ لازمه پس این این چیز میرساند که حاصل شدن کار اول شرط هست برای حاصل شدن کار دوم چرط هست برای حاصل شدن کاره؟ تا اولی نشه دو نمیشه چطوری؟ نه نمیشه اون داستانش فرق میکنه مثلا روی مازی بیاد ان زرب تا زرب تو متوجه ما آخر انواع اعراب ها داریم ما انواع اعراب ها داریم اما اگر روی فعل مضارع بیاد لفظا فعل مضارع چیکار میکنه مجزوم میکنه خوب پس نصب فعل مضارع را خواندیم، جزم فعل مضارع رو خوندیم در این درس میخونیم رفع فعل مضارع ال امثله تطير الحمامه يعود تسیر صحب ینزل المطر یثور الغبار یحکم القاد تطیر الحمامت اینجا فعل ما چه است؟ هست پر اراز می کند فعل مزاره این فعل مزاره مرفوع یا منصوب یا مجزوم اگه از شما پرسیدن؟ میگن چرا مرفوع شده؟ میگی چون ناسب نسرش اومده و نجازه پس فعل مزاره چه است؟ چون خالی از ناسب اجازمه الحمامتو فائل هست یعودو المصافر مصافر بر گردد یعودو فعل مزاره المسافرو فائلش هست تسير السحب راه می رود ابرها فعل مزاره مرفوع بازمه سحب هم فائلش ینزل المطرو یعنی ذل فعل مضارع مرفو چون ناسب جازم روش نمونده علامت رفعش ذمه المطرو فاعل يسور الغبارو غبار گرد و خاک پراکنده است برانگیخته است يسور فعل مزارع مرفوع با ذمه الغبارو هم فائلش یحکمو فعل مزارع مرفو مرفو علامت رفش زمیست القاضی هم که فائلش هست خوب چرا این ها اگر شما گفتن مرفو بگو به بخاطر خالی بودن از ناصبه و جازره حالا قائده یش ماره یرفع الفعل المضارع اذا لم تسبقه ادات من ادوات النسب او الجزد مرفومی میشه فعل مزاره زمانی که قبل از اون عداتی از عدات نسب و جزم سرش نیامده باشن اینا اعراب فعل مزاره بود به این سادگی این هم از اعراب فعل مزاره به این سادگی خوب